اگر کسی روزه بگیرد نماز نخواند این چطور است ثواب روزه جداست یا نه سواب نماز جدا یا نه کسی که روزه گرفت و نماز نخوان اول این است که اگر نماز انکار نمی‌کند روزش ادا می شه و گناه ترک نماز به او می رسد اما در نزد یک جماعت از علما تارک نماز کافر میشه. شه اگر کافر بشه دیگه روزه قبول نمیشه قولی بعد از علما چنین قولی دارن گرچه که جمهور علما این قول تایید نمی‌کنن می کافر نمیشه اما آیا این که نماز نمی روزه هم بگیره آیا آدمی نه اما در اینجا یک حدیثی هست که روز قیامت اولین سؤالی که میشه در مورد نماز هست اگر نماز قبول بشه باقی اعمال قبول میشه اگر نماز رد بشه باقی اعمال هم رد میشن پس بنابرین اون که نماز نمیخونه روز میگیره پس قیامت وابلا هست چونکه وقتی که اونجا بره نمازی که نخونده قبول کجا قبول بشه قبول هم نمیشه وقتی قبول نشده پس روزه حج اینها هم بیکار میشن پس نماز خیلی اهمیت بزرگی داره اما مسئله دیگه هم در خود وصل اضافه همین چیز بگم انهایی که روزه نمی تونن بگیرن بی دنیا بیماری های صعب العلاج به خاطر قهولت سن بالا روزه نمی تونن بگیرن آئی اینها نماز تراوی هم نخونن جوابش این است که نماز تراوی یک عمل جداگانه هست نماز تراوی ربط بروزه نداره چونکه نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انها رو در دو مسئل جداغانه ایلام بیان فرمدن. من منقام رمضان ایمانا و احتساما احتسابا من قام رمضان ایمانان و احتسابا کسی که رمضان رو قیام با ایمان و امیده آجر مشرفالله معتقدم من ذنبه گناهای بزشتی بخشیده میشه و دوباره من سام رمضان ایمان و احتسابا کسی رمضان روزه گرفت با ایمان کامل و امید عجر باز گناهها بخشیده میشن پس قیام رمضان جداگانه فرمودن و روزه رمضان جداگانه فرمودند بس روز رمضان با قیام رمضان تراوی با هم فرض می کسی که بر او روز فرض نیست بنابر عذراهایی که داره باید تراوی رو بخونه تراوی از او نمیشه. تراوی سنت محکده است متعصفانه حالا که برای بنده بیشتر سوال می آید شاید روزی حدی اقل سوالات اگر من برایش ما بگم حدی سوال روزش 300 تا 400 تا سوال شاید برسه روزی امثال بیشترین سوالی که میرسه اگر تراوی نخونیم چی میشه؟ او یا تراوی نقلی به نخونیم چی میشه؟ همین از که هرگر نسبت به اعمال در ما سستی و زوف نشان دادیم این نتیجهش میشه هی گفتید اگر تراوی سنت معقده هست که سنت معقده هی گفتید هشرکر هشرکر آخر گفتید که یک رکت یک قولی حتی از آلبانی ناغ شده یک رکت تراوی ادا میشه و تا اینجا پیش رفتا حالا اکثر سوال این هم که اگر نخونی چی میشه نفل نخونیم. واجب که نیست فرض که نیست فردا واجبات به این صورت میرن این سوستی در آمال این نتیجه آخرش میشه این اثراتی که وقتی ما بقایم از سلف فاصله بگیریم اون آمال کونها انجام میداد شون هرگاه یک سوال زیاد پرسیده شده علامتی ند که این سوال یعنی این مشکل در عموم جامعه وجود داره همیشه در نظر خود روانشناسها وقتی میخوان نقطه های ضعف یک رئیس جمهور رو پیدا بکنه چگونه پیدا میکنن؟ این من برایش ما میگم وقتی میخوان که الله نگاه کنه که این رئیس جمهور چه جاهای مشکل داره یا فلان کشور مشکلاتش کجا هست اونجا بگیرن کل سخنرانی هایی که یک رئیس جمهور در یک سال انجام میده بررسی میکنه بعد از اون نگاه میکنه در این مدت یک سال سخرانی کدوم مشکل رو از این بیشتر مطرح کرده کدوم کار رو بیشتر تأکید کرده این علاماتی رو اینجا اینا مشکل دارن هر چیز یک زیاد مطرح شده مشکل همونجا اونجا, اونجا میلنگه پس این سوالی که زیاد پرسیده میشه یعنی این عمومی شده در بین مردم این چیز وجود داره و مشکل مردم شده این به هر حال این نسبت به عمل سوستی نکنید خود بخواد نسبت به فراز هم انسانها یکی سوست میشن و ضعیف میشن.